فصل دهم. سمیمیت کینکل برایم غیر منتظره بود به گمانم اگر از او تقاضای پول هم می کردم دریغ نمی کرد. مزخرفات او درباره حس متافیزیکی و آن سیگار برگی که در میان لبهایش بود و آزردگی او از چیزهایی که درباره باره مجسمه های مریمش گفتم برایم نفرت انگیز بود دیگر نمی خواستم با او رابطه داشته باشم نه او و نه همسر فرد بویل اگر روزی فرصتی دست بدهد کشیده محکمی به فرِد بویل خواهم زد با او نمیتوان با سلاح روان جنگید بعضی وقتها از اینکه رسم دوئل کردن و افتاده افسوس افسوس میخورم. مشکل من و تسبفنر بر سر ماری تنها با دوئل حل می شود به نظرم تمام حرفها و مذاکرات پنهانی که با ماری در هتل هانوفر بر سر اصول و تعهدات و کتبی داشتم بیهوده و نفرت انگیز بود روح ماری بعد از دومین سخت جنینش ضعیف شده بود و این امر دائم او را به کلیسا می‌کشاند. این حالت او به ویژه در شبهایی که من برنامه نداشتم و با این حال راضی نمی شدم با او به تئاتر، کنسرت یا سخنرانی بروم بیشتر میشد و وقتی به او پیشنهاد می دادم که مثل قبل منچ بازی کنیم یا روی شکم بخوابیم و با هم گپ بزنیم، حسابی جوش می آورد در واقع اختلاف نظر من از جایی شروع شد که ماری تنها از روی لطف و برای آرام کردن من قبول کرد منچ بازی کنیم. او دیگر حاضر نبود با من به دیدن هایی که برای کودکان شش سال به بالا هم مجاز بود بیاید گمان نمیکنم هیچ انسانی در دنیا قادر به درک یک دلغک باشد حتی یک دلغک هم نمیتواند دلغک دیگر را بشناسد چون نقش بزرگ رابطه آنها را حسادت بازی می کند. ماری تا مرز شناخت من پیش آمده بود اما هنوز آنطور که باید و شاید مرا نشناخته بود او اعتقاد داشت که من به عنوان یک انسان خلاق باید علاقه آتشینی به کسب بیشتر فرهنگ از خود نشان دهم این اشتباه بود طبیعتا شبهایی که وقت آزاد داشتم اگر میفهمیدم جایی ای از بکت روی صحنه است فوری تاکسی می گرفتم و به دیدنش میرفتم گاهی سینما هم میروم اما فقط فیلمهایی که دیدنشان برای کودکان شش سال به بالا مجاز باشد ماری هرگز این را درک نکرد چون بخش اعظم تربیت او شامل اطلاعات علم روانشناسی و اصالت عقل آن هم به شیوه تصوف کاتولیکی با این چارچوب بود بگذار آنها فوتبال بازی کنند تا دیگر به دخترها فکر نکنند با تمام این احوالات من در چنین محیطی با اشتیاق به دخترها و سپاس تنها به ماری فکر کردم. گاهی این توهم به من دست میداد که مرتکب جرمی اخلاقی یا جنایتی جنسی شدم دلیل علاقم به فیلم‌هایی که کودکان شش سال هم می آن را ببینند این است که در این فیلم‌ها رسالت مخصوص بزرگسالان کینه، زنا و طلاق جایی ندارد. در فیلم‌هایی که موضوع آنها زنا و طلاق است، همیشه خوشبختی یک نفر نقشی بزرگ دارد. عزیزم مرا خوشبخت کن یا تو که دوست نداری مانع خوشبختی من شوی. من هنوز هم معنی خوشبختی و لحظه ای را نفهمی دهم. فیلم های کاملا سکسی را هم میبینم اما چنین فیلم هایی را خیلی کم نمایش می دهند. فیلم های از این دست اغلب طوری ساخته میشوند شوند که با وجودی که موضوعشان سکس است، اما تماشاگر را راضی می کند. یک دسته از زنان نقابل دست بندی در گروه روسبی ها هستند و نه در گروه زنان خاندار. این زنان مهربان و رعوف در فیلم ها به بازی گرفته نمی شوند. نکته جالب توجه درباره فیلم‌های مجاز برای کودکان شش سال به بالا این است که در این فیلم‌ها همیشه تعداد قابل توجهی روسپی بازی می کند. برای من قابل درک نیست که کمیته‌های مخصوص بر اساس چه معیاری این فیلم‌ها را مناسب کودکان ارزیابی می‌کنند. زنانی که در این فیلم‌ها بازی می‌کنند یا فاحشه مادرزادند یا با توجه به شرایط اجتماعی به این راه کشیده شده‌اند. در هر دو صورت هیچ اثری از مهربانی در آن‌ها دیده نمی‌شود. موضوع بیشتر این فیلم‌های مبتذل درباره دختران بلوندی است که در بارها و کافه های غرب وحشی به رقص کانکان مشغولند و کابوی‌های وحشی، شکارچیان پوست و کاشفان طلا که دو سال تمام در جستجوی طلا بودهاند و بدنشان را بوی تعفن و گند چار پایان گرفته، مشغول تماشای رقص این زنان زیبا و جوان هستند. در پایان شب این اوباش سعی می‌کنند راهی به اتاق دختران جوان پیدا کنند که بیشتر آنها با در بسته روبرو می‌شوند. در چنین مواقعی بعضی از این لاشخورها و خوکهای وحشی دخترها را تا حد مرگ کتک میزنند فکر میکنم هدف از نشان دادن چنین صحنههایی اهمیت عفت و پاکدامنی باشد نمایش شقاوت و سنگدلی در جایی که اطوفت و مهربانی تنها خصیصه انسانی است که باید به تصویر کشیده شود تحجبیم ندارد که گاه این کابای های وحشی بدبخت مثل حیوانات درنده به جان هم میفتند و همدیگر را به قصد کشت کتک میزنند یا به روی هم هفتیر میکشند درست مثل بازی فوتبال در مدرسه شبان روزی ما با این تفاوت که چون کابای ها بزرگترند خشنتر و سنگ دلتر هم هستند واقعا از این اخلاق آمریکایی ها سردر نمی آورم. گمان میکنم که اگر در آنجا زنی تنها از روی محبت و نه به خاطر پول و شهوت با مردی هم بستر شود او را به عنوان جادویراتش بزنند. فیلم های هنری از این هم درد هستند. افرادی که این گونه فیلم ها را می سازند حاضرم از ونگوگ را به نصف پاکت توتون بفروشند و بعد افسوس بخورند که کاش یک پاکت توتون به جایش گرفته بودند. در این فیلم ها به رنج روح هنرمند و نیاز و پیکار او با نفسش توجهی نمی‌شود. اینکه همان زنده است و قادر نیست یک پاکت سیگار یا یک جفت کفش برای همسرش بخرد برای آنها موضوع جالبی نیست چون او هنوز از طرف محملگویان گویان سن اصل مورد تایید قرار نگرفته و به عنوان فردی با استعداد و نابغه معرفی نشده است نظر یک نسل از این یاوه سرایان برای اثبات این مسئله کفایت نمیکند کاوش بی‌پرواه روح هنرمند حتی ماری هم اعتقاد داشت که باید به کاوش در روح هنرمند پرداخت هرچند چیزی شبیه به این وجود دارد اما باید نام دیگری برایش انتخاب کرد آنچه یک دلغک به آن نیاز دارد آرامش است آرامشی که دیگران آن را فراغت از کار می نامند همه این مردم نمی درک کنند که معنای اوقات فراغت برای یک دلغک در واقع فراموش کردن کار است آنها این مسئله را نمی‌فهمند چون برایشان طبیعی است که اوقات فراغتشان را با دیدن های یک های پر کنند. مشکل دیگر هنرمندانی هستند که به هیچ چیز جز هنر فکر نمی کنند. آنها چون کار نمی نیازی به اوقات فراحت ندارند اگر کسی بخواهد انسانی با زوق هنری را هنرمند بنامد آن وقت است که دردناکترین در سوء تفاهمات آغاز می شود انسانهایی با زوق هنری درست همان موقعی که یک هنرمند احتیاج به استراحت دارد به هنر می پردازند. آنها درست در همان دو سه تا پنج دقیقهای که هنرمند هنر را به دست فراموشی سپرده او را با ونگوگ چاپلین یا بکت عذاب می دهند. در چنین لحظاتی دلم میخواهد دست به کشی بزنم درست زمانی که میخواهم به کاری که قصد دارم با ماری انجام دهم ده یا به آبجو به برگریزان درختان در پاییز بازی منچ یا به چیزی پیش پا افتاده و حتی احساساتی فکر کنم، درست در همان موقع یک بیل یا زومرویلد شروع به بحث دربارهٔ هنر میکند راست در همان لحظه که من به شدت احساس عادی بودن میکنم. عادی به ترزییم مبتزل مانند کارل امامانز که فرید بویل یا یازمرویل درباره کلودل یا یونسکو واصل می کنند. کمی از این ویژگی در ماری هم هست که به تازگی بیشترم شده. این ویژگی را موقعی تشخیص دادم که به او گفتم میخوام با گیتار آواز بخوانم. این حرف آنطور که خودش می گفت به غریض زیبایی شناسیاش برخورد. اوقات فراقت مردم هنرمند ساعت کار یک دلغک است همه میدانن اوقات فراغت چیست؟ از یک مدیر کل با حقوق بالا گرفته تا کارگری که تفریحش آبجو خوردن است. چه شکارچی خرس در آلاسکا و چک کلکسیونر تمر امپرسیونیست ها، اکسپرسیونیست ها، موسیقی دان ها یک چیز قطعی است کسی که آثار هنری جمع می کند هنر نیست. آنطور که در اوقات فراغت سیگار زیر لبشان میگذارند و قیافه می گیرند دیوان من این احساس را خوب میشناسم و به آنها که به این احساس آرامش رسیدند حسودی می کنم. لحظاتی وجود دارد که یک دلقک دلش بخواد پاهایش را دراز کند و به اندازه کشیدن یک نصف سیگار طعم فراغت را بچشد. موضوع دیوانه کننده دیگر چیزی است که به مرخصی می گویند. دیگران می توانند برای سه چهار تا شش هفته به مرخصی بروند. ماری چند بار سعی کرد این احساس لذت از مرخصی را در من ایجاد کند. با هم به کنار دریا کوهستان یا همام های آبگر می رفتیم اما من در همان روز دوم مریض می شدم سر تا پای بدنم پر از جوش می شد و میل جنایت مغزم را پر میکرد. گمان کنم بیماریم از حسادت بود یک بار ماری به این فکر وحشتناک گفتاد که مرخصی ما را در جایی بگذرانیم که هنرمندان برای مرخصی به آنجا می روند طبیعی است که آنجا پر از انسانهای هنری بود و در همان شب اول با مرد سبک مغزی که در صنعت سینما نام و نقشی داشت و مراوادار به بحث درباره گروک و چاپلین و دلغک های, های شکسپیر کرد کارمان به کتک کاری کشید او تا جایی که می توانست کتک هم زد این قبیل هنرمندان جز خوردن و خوابیدن کاری ندارند و با استفاده از زور بازویشان زندگی را به خوشی می گذارند. آنجا زردی هم گرفتم که بلا فاصله پس از ترک آنجا حالم بهتر شد ناتوانی هم در کنترل خود یا آنطور که نمایندم تسنورر میگوید عدم تمرکز فکر آرامشم را برهم میزند نمایش های من خیلی متنوند معجونی از پانتومیم و دلغک بازی من میتوانستم یک بازیگر پانتومیم یا یک دلغک خوب باشم ولی سعی میکنم معجونی از تمام اینها را نمایش بدهم. اگر زود به زود برنامه هایم را عوض نمیکردم شاید می توانستم با برنامه های مثل واعظهای کاتولیک یا پروتستان جلسه شورای نظارت، عبور مرور ماشین ها در خیابان و چند برنامه دیگر سالیان دراز به خوبی امرار معاش کنم. ولی وقتی یک برنامه را ده یا بیست بار اجرا می کنم چنان برایم خسته کننده می شود که انگام اجرا به می میافتند و باید با تمام قدرت عضولات دهانم را کنترل کنم. خودم باعث خستگی خودم می شود. وقتی میشنم شنم هم دلقه هایی هستن که سی سال تمام یک برنامه را اجرا می چنان وحشتی قلبم را میگیرد گیرد که گویی محکوم به خوردن یک گونی آرد با قاشق شدم هر چیزی باید نوعی از لذت برایم داشته باشد وگرنه مریض می شدم. برای فرار از تمرینات روزانه که دستکم چهار تا شش ساعت در روز است ناگهان به فکرم می رسد که شاید بتوانم آکروبات بازی کنم یا آواز بخوانم. در این ششفته همین قدر هم تمرین نکردم و به چند پشتک بارو و بالانس و چند حرکت جیمیناستیک روی تشک پلاستیکی که همیشه با من است اکتفا کردم زخم شدن زانو بهانه خوبی به دستم داده که روی مبل دراز بکشم سیگار دود کنم و به حال خودم دل و سوزانم آخرین برنامه‌ام پانتومی می برس به نطق وزیر کاملا خوب بود ولی از آنجا که نتوانستم آنطور که باید در اجرای آن غلف کنم نتوانستم آن را در سطح عالی اجرا کنم تمام های غنایی من با شکست روبرو شدند هیچگاه موفق نشدم بدون اینکه کارم به ابتذال بکشد یک چیز انسانی را مجسم کنم های زوج رقصنده رفتن به مدرسه و بازگشت از مدرسه از نظر اجرای حرکات با ارزش بودند ولی وقتی سعی کردم سرگذشت یک مرد را مجسم کنم دوباره به سطح کاریکاتور سازی تنزل کردم و برنامه شکست خورد. وقتی ماری تصمیم مرا در آواز خواندن با گیتار فرار نامی تقبا او بود. موفقیت من در به تصویر کشیدن پوچی زندگی روزمره است. من زندگی مردم را نگاه می کنم، مشاهداتم را جمع می کنم و با در نظر گرفتن عوامل مختلف آنها را ریشه یابی می کنم. صبح هزاران نفر به هر ایستگاه بزرگ راه آهن وارد می شوند تا در شهر کار کنند و هزاران نفر برای کار از شهر خارج می شوند. و چرا این مردم محل کارشان را با هم عوض نمی کنند؟ یا صف ماشین هایی که صبح به زحمت جلو می روند در نظر بگیرید. اگر مردم محل کار یا خانه هایشان را با هم عوض کنند تمام این جنجال های بی جهت، آلودگی هوا، مشکلات روانی و پاروزنی غم دست پلیس های راهنمایی تمام می شود. چنان سکوت و آرامشی برقرار خواهد شد که بتوان سر آنها من چه کرد از این مشاهداتم پانتومی می ساخته بودم که در آن فقط با دست ها و پاهایم کار میکردم و صورتم که آن را با گچی سفید پوشانده بودم بی حرکت میماند موفق شده بودم فقط با این چهار عضو برای تماشاگری که زیادی را که در این جنجال وجود دارد مجسم کنم هدف من این است تا جایی که ممکن است از وسایل کمتری استفاده کنم برای برنامه رفتن به مدرسه و بازگشت به خانه حتی از کیف هم استفاده نکردم همان حالت دستی که کیف را نگه داشته بود بس بود در آخرین لحظه از مقابل تراموهایی که زنگ میزنند رد می‌شوم به رکاب اتوبوس‌ها میپرم و دوباره پیاده می‌شوم ویترین مغازه‌ها سرگرمم می‌کند روی دیوار خانه ها با گچ کلماتی با املای غلط مینویسم و دیر به مدرسه میرسم در مقابل معلمی که ناسزا میگوید می‌ایستم کیفم را از پشتم پای می‌آورم و پشت نیمکت می خزم. من در نشان دادن زندگی پر جنب و جوش و پر احساس بچه موفقم در زندگی یک بچه چیزهایی بیاهمیت اهمیت دارند همه چیز غریب بی نظم و همیشه غمنگیز است یک بچه معنی اوقات فراغت را نمی و تنها موقعی که اصول و حفظ اصول را قبول کرد معنای آن را می فهمد. من نشانه های اوقات فراغت را به هر شکلی که باشد می بینم وقتی یک کارگر پاکت حقوقش را در جیب می‌گذارد و سوار موتورش می‌شود یا هنگامی که یک دلال بالاخره گوشی تلفن را زمین گذاشته دفترچه یادداشتش را توی کشوی میز می‌گذارد و کشو را قفل می‌کند یا وقتی یک خاربار فروش پیشبندش را باز می‌کند دستهایش را می‌شوید و جلوی آینه موهایش را مرتب می‌کند و به لبش ماتیک تیک می می‌مالد کیف دستیش را برمیدارد و راه می‌افتد تمام اینها چنان برایم انسانی است که به نظر می‌رسد من اصلاً انسان نیستم چون من تنها می توانم اوقات فراغت را نمایشتم. یک بار با ماری در این باره که آیا گاوی که نشخار می کند یا خری که پشت پرچین چرت می زند هم اوقات فراغت دارد حرف زدم. ماری عقیده داشت این طرز تفکر توهین به مقدسات است. خوابیدن نوعی اوقات فراغت و چه مشترک جالبی میان انسان و حیوان است ولی آن چیزی که اوقات فراغت را اوقات فراغت می کند این است که انسان نسبت به اوقات فراغت بودن آن آگاهی کامل داشته باشد. حتی برای پزشکان هم اوقات فراغت تعیین کرده اند و به تازگی برای کشیشها از این بابت سخت ناراحتم. آنها نباید اوقات فراغت داشته باشند تا هنرمندان را بفهمند. لازم نیست سر از هنر در بیاورند یا از قرارداد و برنامه و این چیزهای احمقانه، ولی طبیعت هنرمند را باید بفهمند. همیشه با ماری اختلاف داشتم که آیا خدا هم، خدایی که او به آن اعتقاد دارد، اوقات فراغت دارد یا نه؟ ماری همیشه میگفت بله. تورات را می آورد و داستان آفرینش را می و در روز هفتم خداوند فراغت یافت و من آن را به استناد انجیل رد می کردم و می گفتم که ممکن است خدای تورات استراحت داشته باشد ولی فراغت مسیح برایم غیر قابل تصور است رنگ ماری می پرید و اقرار می کرد که برای او هم فراغت مسیح نوعی کفر است مسیح در جشن و شادی شرکت می کرد ولی هیچگاه فراغت نداشت من می توانم مثل یک حیوان بخوابم اغلب بدون رویا و تنها برای چند دقیقه با وجود این احساس میکنم کنم که به انداز ابدیت از زندگی دور بودم گویی سرم را از میان دیواری گذراندم که پشت آن تاریکی بی انتهاست فراموشی و فراغت جاودان فکر کنم اریتم وقتی راکت تنیس از دستش روی زمین یا قاشقش در بشقاب سوپ میافتاد و یا ورقهای بازی را با یک حرکت در آتش انداخت چنین چیزی را دران خود احساس میکرد هیچ یک بار از هنریت پرسیدم وقتی این حال را پیدا میکنی به چه فکر میکنی گفت جدن نمیدانی؟ آن وقت آهسته گفت به هیچ به هیچ فکر میکنم گفتم آخر به هیچ که نمیتوان فکر کرد و او جواب داد چرا؟ میشود ناگهان تمام وجودم خالی میشود با این حال مثل این است که مستم و میخواهم که ها و لباس هایم رو هم از تنم بیرون بیاورم و به طرفی پرتاب کنم میخواهم سبک بار باشم همچنین گفت برایش لذت بخش است که منتظر آمدن این حالت باشد ولی وقتی انتظار میکشد نمیآید و همیشه بی مقدمه ظاهر می شود و هر بار به اندازه ابدیت طول میکشد این حالت چند بار هم در مدرسه به او دست داده بود و من هنوز صحبت های تلفنی مادرم را با معلم مدرسه به یاد دارم بله بله بله کلمه یه هیستری بهترین تعریف آن است فراموش نکنید که او را سخت تنبیه کنید آه، گاه که سه یا چهار ساعت منچ بازی میکنم. این احساس غیر قابل وصف پوچی به من دست می دهد. تنها صدای ریختن تاز، حرکت مهرها و کشیده شدن روی صفحه و صدای زدن مهره است من حتی موفق شدم ماری را که ترجیح میداد شطرنج بازی کند به این بازی معتاد کنم برای ما مثل داروی مخدر بود گای شش هفت ساعت پشت سر هم بازی میکردیم و در چهره خدمتکاران هتل که برایمان چای یا قهوه می آوردن تسی یا میخته با خشم میدیدم که وقتی آن حالت به ریت دست میداد. در چهرهی مادرم دیده می و گاهی همان حرفی را می زدند که آن پیرمرد و پیرزن در اتوبوس وقتی از پیش ماری به خانه میرفتم زده بودند باور کردنی نیست. ماری برای ثبت امتیازات بازی روش پیچیده اخترا رو کرده بود. بسته به اینکه چه کسی مهره دیگری را زده بود امتیازاتش را در جدول یادداشت داشت می کرد. جدول جالبی بود و من برای کمک به او خودکاری چهار رنگ برایش خریده بودم تا به آن بهتر امتیازها را مشخص کند. گاهی توی قطار هم ساعت‌ها بازی می‌کردیم و پشت کارمان باعث تعجب مسافران جدی قطار می‌شد تا اینکه ناگهان متوجه شدم ماری فقط به خاطر من به خاطر اینکه باعث آسایش من و روح هنرمندانم شود بازی می‌کند او دیگر حواسش سر جایش نبود این وضع از چند ماه پیش وقتی من پنج روز پشت سرم کار نداشتم و پیشنهاد ماری را برای رفتن به بن رد کرده بودم شروع شد من نمیخواستم به بون بروم من از گروه و ملاقات با لهومی ترسیدم ولی ماری دائم میگفت او باید یک بار دیگر هوای کاتولیکی استنشاخ کند او را به یاد شبی انداختم که بعد از شرکت در جلسه گروه با قطار از بون به کلن برگشتیم شبی که خسته و گفته بودیم من نکبت تمام وجود من را گرفته بود و او دائما میگفت تو خیلی مهربانی خیلی شبی که روی شانه من خوابش برد و تنها وقتی بلیدفوش فروش اسم ایستگاه های میان راه را فریاد میکشید از خواب می اشتم والبربرگ برول، برل کالش اورن هر بار او از جایش می و من دوباره سرش را روی شاننم میگذاشتم و او دوباره به خواب میرفت هنگامی که در ایستگاه غرب کلن پیاده شدیم گفت کاشکی به سینما رفته بودیم وقتی صحبت از هوای کاتولیکی کرد او را به یاد این حرفش انداختم و پیشنهاد کردم. به سینما برویم یا به کافهای برویم و برخصیم یا منچ بازی کنیم ولی ماری شانهایش را بالا انداخت و به بن رفت من معنی هوای کاتولیکی را نمیفهمیدم چون ما در ازنا بروک بودیم و هوای این شهر هم چندان غیر کاتولیکی نبود